جلسی چه هشتون، جلسی چه هشتون، جلسی الحمد رب العالمين و الله على محمد و آله و سايله على فلم جمله و مال یعنی شفه جمله حدیقه چهارم در خصوص جمله بحث دارد و آنچه که یتبعو جمله به دنبال جمله میاد یعنی شفه جمله مثل زرب و جار و مجمع. ظرف و جار و مجرور رو بهش میگن تابه جمله شرف جمله پس احکامی که تو این فصل خواهیم گفت تو این حدیقه احکام جمله در زبان عربی و شرف علی حدیقۃ الروابعه تو فل جمله و ما یتبار اول جمله رو تعریف کن میگه الجملت و قولان لفظان قولیست لفظیست تزمن کلمتایی که در بر گرفته دو کلمه رو حد در اقل و مصند تزمن کلمتایی به اصنادن در زم گرفتن این دوتا کلمه رو هم به سبب اسناد است یعنی ارتباط اسنادی ایجاد کرده بین ظاهرش اینه که این به اسنادن باید به اسناد تام گفته میشد تو تعریف باید این‌طوری میامد چرا چون ما داریم که دو کلمه رو در گرفته باشه یک چیز و ارتباط بین اونها هم ارتباط اسنادی باشه اما جمله نشه مثل زرب وزیده زرب و زیدن زرب مستر است و اضافه شده به فاعلش زید ارتباط بین این دو هم ارتباط اسنادی است سلام, سلام. اما کسی بین ها جمله یا مثل زیدون زاربون ابوهو زیدون بن یا قائمون ابوهو قائمون ابوهو قائمون, قائمون مسنده و ابوهو مسنده لا. دو کلمه هم هستن اما کسی نگفته زیدون مبتدا و جمله قائمون ابوهو چی؟ اصلا این اصناد، اسناد اسناد ناقصه اسناد تام اسناد فعل است به فائل یا خودش و اصناد جمله اسمیه هم اسناد تام، این خبر به مبتدا یا اسناد مبتدای وصفی به فائل پس بنابراین این جمله وارد است از قولی که تزم من کلمتنگ به اصناده یعنی به اسناد انطلاق ممکن بوده از نظر شیخ این جواب رو داده بشه که این اندل اطلاق یعنی سر فلد فرد لکمن قایده ایه که مطلق اگر یک چیزی رو گفتیم المطلق اندل اطلاق واقعی که مطلق مطلق گفته بشه هیچ قیری هم نزنیم یعنی سر فلد فرد لکمن منصرف میشه به فرده اکمل و فرد اکمل اسناد اسناد تامه اگر با این چیز جواب بدیم خب اسناد تام دیگه تام لازم نیست ولی تو تعریف قیودات رو میارن تو تعریف قیودات رو میارن تو تعریف از این مباحث چند خب جمله عبارت شد از کلامی که دو کلمه رو در بر بگیره و دو تا کلمه رو هم در بر گرفتنش به خاطر چی باشه اونم چون واسنادی اسناد این تعریف جمله میگه فریع کلامه. جمعه اعم منال کلام این جمله اعم است از کلام جمله اعم است و کلام اخص یعنی هر کلامی صد زد جمله است اما هر جملهی ممکن کلام نه میشه یعنی یه سری افراد بیشتری تحت پوشش جمله هستند که تحت پوشش کلام نیستند. فهیه فا نتیجه میگیده با این تعریف پس بنابراین این جمله اهم من کلام بینشون عموم خصوص مطلقه امست از کلام این دل اکسر نزده اکسر آقایونه نوها نزد اکسر نوها جمله امست است کلام بعض هم جمله و کلام رو مترادف کنستن با هم مصابه ایشون میگه نه نزده اکسر و قولشون هم اثر کلام اخست است چرا؟ کلام همین تعریف رو دارد به انزمام مع فائدته یعنی قولون تزمن کلمتین به اسناد تامن معل فائدته که همونیه که توی کتاب شرخ همسله میخونیم الکلام ما افادر مستمع فائدتن تامتن یستق و سکوت و آه. کلام فائده هملا لذا مثلا اگر بگیم انار نارو هار رتون. آتش گرم است از سماو و فوقنا آسمان بالای سر ماست الارز تحتنا زمین زیر پای ماست اینها هیچ کدامشان کلام میزه. اما جمله تزمین چیچی؟ چی؟ هزمین دو کلمه با اصناد تام رو کردن هم پایده نه این در عکس فعن حالا فعن بودعت به اسم حالا اگر جمله با اسم شروع بشه ها فعسمی تو یعنی فعیه اسمیه گردون اون جمله بشونگرد جمله اسم نه اینکه با اسم شروع بشه، یعنی اینکه اسم اولش بیاد، ممکنه اسم اولش بیاد و به شرط اینکه جایگاه اون اسم هم همون اول باشه و الا در مثلا زیدن زرابتو، خب زیدن زرابتو چنان جمعه؟ بهیگرز، زیدن مفهول زرابتو، جاش معخر بوده به خاطر حسر چه کردیم؟ مخندس اون اسمی که باهاش جمله شروع میشه حقش هم همون جمه مثل زیدون قائمون یا زیدون یزره بود الله و یرزا و اصلش همون جاست بود فنه به اسمن فا اسمیه یدون نه و زیدون قائمون خب زیدون اسم است و قایمون خب انتسومو خیرون لکن انتسومو هم اسمه اما اسم چی چیه؟ محوله اسم مخواد بگه فرقی نمیکنه اسم سریع باشد مثل زی یا اسم معول باشه مثل انتسومو انتسومو تحبیل بمستر می نمیشه خیران خبه نکن متعلق یعنی ساومو کن سیا کن خیران نکن روز گرفتن شما بهتره برای شما و این نزهیدن میخواد بگه گاهی حرف در میاد اما ما جمعه حرفیه نداریم اعتباره به اون حرف نیست ابن زيدن قائمون این باز جمله جمله چیه؟ اسمی است. اومه ان ای اومده این جمله اسمیه رو چه بکنه؟ ترکیب بشه. ابن زيدن قائمون. چرا؟ این که آخه اولش اسم نیست. شما فرمودید ان بود به اسمن میگه اسم یعنی زیرا از تعلیلی است. از لا عبارت به حرف هنا زیرا ابره اسم مستر اعتبار زیرا که اعتباری نیست به حرف ها؟ اعتناعی نیست به حرف در اینجا در جهت اسمیه و فعلیه کردن جمله اعتبار به حرف نیست از لا ابره به حرف تمام شد او بفعلن اتفاس به جای به اسم ان بود حد به اسم اون شد فاسمی دیگه او بفعلن، یعنی به به یعنی ان بود حد به فعل ففعلی که تو شروع بشه با فعل دیگه است حالا شرطش هم اینه که فعل جایگاهش چی باشه همون ابتدا باشه ممکنه یه موقع با فعل شروع بشه اما جای فعل نجا نباشه نویزه قصده که غلاموهو رجلون قصده که غلاموهو رجل این الان قصده که غلاموهو خبر مقدم رجلون مفتده معخره های غلاموهو هم به کی برمیگرده؟ به رجلون و عود زمیر به مرجع متأخر در لفظ هست اما در رتبه بگیر کل این جمله رو دقت دقت کل این جمله رو بهش میگن جمله چی؟ قصده که قرآمگو را جمعه اسمیه اما جمله خبر رو بهش میگن چی؟ بلیگه. در مورد قصده که قرآمگو بله در ابتدای جمله واقع شده قصده جایگاه هم همون اول جمله خبری اما در مورد جمله قصده که قرآمگو را پلش این جمله جمله اسمی هست. الان این جمله هم اسمی است هم فعلی است نسبت به کبرا یعنی کلش جمله جمله اسمی است و نسبت به سوغاش جمله جمله او به فعیلن و فعیلیتون که قام زیدون معلوم فعیلو میگه به حرف ابرتی نیست و حل قام زیدون این هم درست و حلا زیدن زربته حلا برای چیه؟ تحزیز و عداد تحزیز تو باب اشتغال خوندیم بعدش چی میاد؟ منصوب میاد و مفعول فعل مقدره میخواد بگه این زیدن الان جمله فعلیه این یعن هلا جمله جمعه فعلیه او است اون زرف دارو که جمله مفسره است تو مقل اعرابی نداره هیچی اون فقط تفسیر میکنه این هلا زیدن جمله چیه؟ فعلیه است به چه دلیل؟ به دلیل اینه که با فعل شروع شده پس کو فعلش؟ فعلش محز المحزوف لعلتن کلمذکون اون فیم یا اون اسم یا اون حرفی که حضب شده به خاطر علتی کلمذکون انگار هست الان اینجا المحزوف و لعلتن هم تفسیر ضرب روست باب اشتخاب وزا حلا زیدن زربتون و یا عبدالله میخواد بگه اینم جمعه فعلیه از بذل که یا نیامت کرده از چی؟ از او یا عطل و این جمله جمله فیلی هست و ابتنگاه مفقوره ببینیدن منسوب و این اهدون من المشرکین نه استجاره که من تو حل دازه نمیزازه بعد از این شرطیه چی باید بیار؟ فیل باید بیار لذا این اهدون مبتدا و استجاره که خبر نیست آه. چرا چون بعد از این شرطیه هیچ موقع جمله اسمی نمیاد پس این حدون چیه فاعل یک استجارکه مقدره که این استجارکه چکارش میکنه تفزیر. به این نمیگن باب اشتغال به این میگن باب تفسیر فرقش با باب اشتغال چیه چون اون اسم قبلی منصوب نیست بلکه چیه مرفوعه مثل اذا از امشب انشق از و انشقت شما میگید از او و مقتدر انشقت نه بعد از ازای شرطیه اینطور نیست بلکه میگید از او و خواهل یه مقدر که این انشقت چکارش میکنه؟ تبسی. باب اشتقال بود که نصب بده به زمیرش و نتونه عمل بکنه در اسم؟ باب. اینجا رفته رضا به این میگم باب چی چی؟ باب تبسی. علم میگید این این شرطیه اهدون فائل استجارکه مقدر که این تفسیرش بود مند مشرکین جال و مجرور بعد از نکره اهد سفد استجارکه دوبار که مذبور محل رابی نداره فیل و محل عرابی نداره جمله مفسر است دنبالش تو آیه داره فعجره و عجر و استجار یعنی طلب پناه کرد طلب جوار کرد پناه خواست عجر عجاره یجیر و اجارتن یعنی پناه دادن پناه دادن لذا میگه ان اهد من المشرکین استجار نه استجاره کرد ای به برای اگر اهدی از این مشرکین از تو تناف خواست فعجر رو بودش بده حمایت کن فعجر آه. چرا؟ چرا اینو میگه این اهدول جمله فعلیه میگه لعنل مقدره کل همین الان گفتم لعنل مقدره لئلتن کلمست کل سمت سپس، حالا از این حرفا جمله یک سهبه جمعه فعلیه اسمی خبرم فصغرا. اگر این جمله خبر واقعشه بهش میگن جمله چی چی؟ سغرا باید که اون کل جمله میگن چی با مبتداش؟ کبرا من همین هم الان گفتم ثم این وقعت الجملتو خبرن فسغرا او کان خبر المبتدعفی ها جملتن ف... یا خبر مبتدا در این جمله جمله باشه فکر کبرا و كل جمله بهش میگن جمله چی؟, چی؟ جمله ای که خبر مبتدا در اون جمله است بهش میگن چی؟ خبره. به کلش میگن خبر اگر خودش خبر مبتدا واقعه به خودش میگن چی؟ صغرا بعد جمعه ای که خبرش جمله است به کلش میگن چی؟ خوبرا این بعدا خبران فحیه صغرا او کان خبر المبتدا فیها یا باشد خبر مبتدا در این جمله ما جمله خبر مبتدا جمله است بعد به کلش میگن تفکر کن حالا مثال بزنیم زیدون قام ابوب زیدون مبتدا قام و جمله خبرش به کل زیدون قام عبوه میگن چی خود قام ابوب میگن چی استورا قوام عبوه صغرا قوام عبوه فيل فاعل صغرا بل جميع كبرى جميعش بهش میگن مشخصه حالا ممکنه یک زمانی جمله دوم جمله فعلیه باشه ممکنه یک زمانی جمله اسمیه باشه زیدون ابوه قانون زیدون ابوه قا زیدان. درست شد؟ حالا بریم میسید زیدون ابوه و قامه زیدون ابوه و قامه. قامه فقط چیه؟ فیل و چیه فقط؟ صغرا ابوه و چیه؟ صغراست نسبت به قامه بعد ابوه و مبتدا مبتدار خبرن میگه نسبت به زیدون چیه؟ صغراست پس الان ببین ابو حقامه نسبت به یک چیز کبرا شد نسبت به یک چیز دیگه چی شد؟ سغرا شد درسته؟ ول جمعه و کبرا و قد تکون و سغرا و کبرا به اعتبار این همین عبارت که گفتن گاهی اوقات یک جمله، هم سغراست هم کبرا نه فقط از یه ها از دو جهت. نسبت به ما بعدش میشه کبرا نسبت به ما قبلش میشه چی؟ سغرا نه با زیدان ابوهو غلاموهو منطلقه. پیش داده عبارتو من خیلی راحت تر درست کردم درسته؟ الان یعنی باید بگید زیدان مقتدای اول ابوهو مقتدای دوم غلاموهو مقتدای سوم، منتالقان خبر قلامهو، منطلقون خبر غلاموهو خبر غلاموهو. حالا خود قلاموهو منتلق این جبله چیه؟ سغراس فقط قلاموهو منتلق جا قامه یکی من گفتم این فقط سغراس اما قلاموهو منتلق خبر ابوهوه نسبت به ابوهو چیه؟ سغراس و ابوه و قلاموهو منتلق کلش چیه؟ های قلاموهو برمیگرده به عبد بعد ابوه و غلامه و منطلق که کبرا بود نسبت به زیدی که مبتدای اولی که این جمله خلالشی میشه چی؟ سهره و های ابوه و رابطش کرده های ابوه و رابطی که بود حالا میگه گاه اوقات هستش جمله نه سهره است نه کبرا چون خبر مبتدا واقع نشون لا تکونو سهره و لا کبرا گاه اوقات نه سهره است نه کبرا که زیدون. ما شرط اسورا کوگرامون این بود که در جمله اسمیه باشه خبر مبتدا واقعشه و با اون مبتدا با خبرش بشه کورا با و خود خبرش فقط باشه مثل با من تمام شد اجمال اون. اول به نظره اجمال یک بحثی رو میکنه تعداد جملاتی که محل اعراب دارن بیان میکنه بعد یکی یکی شروع میکنه به چی؟ به تمسیل میدونید جمله محل اعرابی نمی‌کنه چون چیزی که عاملی که بر سر جمله اثر کنه ما نداره اعراب در کجا پیدا میشه؟ چون عامل موقعی که میاد چی میگذاره از خودش؟ اثر اثر در کجا پیدا میشه؟ در آخر کلمه ال اعراب و یجله به اول عامل و فی اخرن کلمته ها میتشه دهش عامل در اخرش و آخر جمله ما نداریم به اعراب اعراب جایگاهش در مفرد در جمله نیست از جمله هایی که محل اعراب دارن نتیجه میگیریم که چه نوع جمله‌ای هستند جمله‌هایی هم که به جای مفرد میاد جملاتی هستند که به جای مفرد است. مثلا جمله خبر زیدون یقوم این یقوم اولا و به ذات خبر باید چی باشه مفرد باشه یه جمله مفرد باشه که مفعول باشه دیگه زیدون قائم این یقوم چون در جایگاه خبر نشسته شده معللم جمله ای که حال معلم منصوبه آه. جا از ایدون یزحکو این یزحکو به جای چی نشسته زاهکم چون حال منصوبه دارید جمله جمعه مضافنه مجروره چون جای مضافنه لکه برکه پس براوری تمامی جملاتی که محله از دارند جملاتی هستند که جای مفرد نشستن و دلیل بر این حرف اینه که اعراب در مفرد پیدا میشه و این تا جایی که جای مفرد نشسته باشه اعراب در خبری مثلا جمله جواب قسم محل اعرابی ندارن جمله جواب قسم محل اعرابی بگیر نداره چرا نداره؟ بیدن که جواب قسم ایچ مفرد نمیشه جواب قسم باید سر جای خودش جمله اگه سر جای خودش بیا محل اعرابی اگه جای مفردی نشاست که اون مفرد اعراب دارد مرکب هزار از حکمت این که بعضی از جملات محل اعراب دارند و بعضی ندارند به چی برمیگرده به اینکه جملاتی که محل اعرابی دارند جملاتی هستند که به جای مفرد نشستند، محله اعرابی بیدار کردن محله اعراب اثر و یسر برامه فی حالا کلمه نیست چیزی که جای کلمه شد جملاتی که محله اعرابی ندارن جملاتی هستن که چی؟ سر جای خودشون هم. جای مفردی نشستن مثل جواب و قصر مثل جمله ای که اول کلام واقع شده اینا انزلناه و فیلهی داده این جمله محله اعرابی چرا چون اول کلام جمله بیاد. خب، حالا نگاه کنین حکمت کار رو که فهمیدین اجمال اون الجملاللتی لها محلون جملی که برای اون محل عرابی سب اون چند هست؟ هفت هست الخبری یه تو یکیش جمله خبر. خب جمله خبر چه محلی از عراب داره؟ ها؟ معرفوعه اگه خبر مبتدا باشه. منصوب اگه خبر گانه باشه. میگه بیگه بودش. درست شد. مندی چی شده باشه؟ مثلا اگه مفعول دوم زمنی نشده باشه میشه چی؟ منصوب. ولی حالیه تو جمله حالیه فقط، ولی مفعولو به، خب مفعول باید اسم باشه، مفرد باشه. الا مفعولی یه دونه فعله که جمله میاد، خوبینه. مفعول قدوم جمعه است قاله است که غیر از مفعول مفعول و این مفعول قل هو و الله هو این هو و احد محلن منصور مفعول ول مفعول به ول مضاف و ها جمعه که مضاف چی میشه؟ محلن یا مقبول تو و یا و مفعولت یا اوم هم به اضافه شده به چید؟ اینبار گفته یا اوم وعادتی و یا اوم بهاستی و یا اوم او از یا اوم والد تو و یا اوم او و لشب... وات و واقعت و جوابند شرط جازم جمله ای که واقع بشه جواب شرط اون هم شرطی که جزم میده ها چون بعضی شرط ها از جذب نمیده مثل اضاف خب جمعه اگر جواب شرط اعزاد آقشی ملد عرابی نداره اعزاد جاهن اصرون لا ولفت ولعی الناس سید خلون افیدین اللہ هفواجه فسبتی این صفحه ملد اعرابی نداره چون بعد از اعزاد سود اما مثل اون آیه که خوندم این اهدون مند مشرکی نه استجاره که فعجره این فعجره جوابه شرط جازمه این چه محلنی از را داره جمعهش؟ محلن مجزومه میگیم عجرفل زمیر انتفایل هو مفقود این جمله محلن مجزوم جواب این شرطه. اگر جواب عداد شرط جازم واقع شد میشه چی چی؟ مجزوم و تابه اتو لما جمله که تابه مفرد شده باشه یعنی عطب شده باشه به یه مفرد بدل آورده شده باشه آه. این نوع جملاتی که تابع مفرد هم شدن محل اعرابی دارن البته به شرط اینکه اون مفرد چی باشه؟ اون محسن رفتون دا همه بستون در باستان گفت تابعه اطول مفرده تابع بشه به یه مفرد بودن مفردش میتونیم بگیم باید محل داشته باشه بودن مفرد تو جمله همیشه محل دارد و الا محل داشته. و تابع نتول مفرد و تابع تو جملت تن نهام هم یه شده باشه به یه جمله اما به شرطی که اون جمله قبلی چی باشه محل عرابی داشته باشه اگر اون جمله قبلی محل اعرابی داشت این هم محل عرابی پیدا میکنه چند تا ولتی حالا اون جملاتی که لا محلله ها سبون جملاتی محلل اعرابی هم ندارن هفتان عیزن یعنی مثل صورت بالت المستعنفتو یکی جمله مستعنفه یعنی جملهی که از سر گرفتی شد که اولی که امنا نه ها فیده برای محلل قلخ و الله ها کل قلخ و الله ها اهل محلل اعرابی مستعنفه ون معترضه جمله معترضه مثل اون زیدون علم تو که علم داره مگفتون جمله مدرزه از و محل اعرابی و تکشیریتو جمله مفسره که بعد از مثلا ان مفسره در دیانه و ناده ایناهو چی چی؟ انیا ابراهیم ابراهی. ای ای ای این یا ابراهیم که محل اعرابی توی خوندیم این و ناده اینا و انیا و جمله سله امن لذینا آمن چند بار شده که جملات سله اومده ما بودیم جمله سله محل نهراوی چرا؟ چون سر جای خودش هم اینا هیچ موقع سله موصول مختل یادی نبودیم اگه جا و مجلوم سله محصول باشه رو به است یعنی, یعنی حتما باید جمله یعنی حتما باید جمله بشه جمله‌ای که المجاب و به جواب داده شده با اون جمله چی؟ قسم جمله‌ای که باش قسم جواب داده شده این جواب و قسم هسته من درامی نداره و و به ها شرطون غیر جازه مثل همون قسم ای که جواب داده شده با اون شرطی که چیه؟ جزم نبیده مثل ایسا یا مثل لو لو افیه ما لا عصدت ها این لفت عصدت محل عرابی نداره چرا؟ چون جواب جمله واقعش جوابش عداد شرطی واقع شده که جزم و تابه عطل مالا محل نداره. حالا جمله آخر جمعه که تابه شده باشه به جمعه که محل عرابی مشخص شد و تابه عطل مالا محل اول میگیم زیدون قائمون محل عرابی نداره جمله مستنفه باید میگه و همرون جا بسون این هم باز محله حرابی 100 تا جمعه هم به هم عطب بشن محل حرابی پیدا چرا چون معتوف در حکمه چیه؟ معتوفون علیه خودشون و تابه اطول مالا محل لب بذارید باشید باشید تفصیلش انشالله برای جمسه